حکایت، دیدم گل تازه چند دسته بر گمبدی از گیاه رسته، گفتم چه بود گیاه ناچیز تا در صف گل نشیند و نیز بگریست گیاه، گفت خاموش، صحبت نکند کرم فراموش، گر نیست جمال و رنگ و بوگم، آخر نگیاه باغ اوگم، من بنده حضرت کریمم پرورده نعمت قدیمم گر بی هنرم و گر هنرمند لطف است امیدم از خداوند با آنکه بذائتی ندارم سرمایه طاعتی ندارم او چاره کار بنده داند چون هیچ وسیلتش نماند رسم است که مالکان تحریر آزاد کنند بندی پیر، ایبار خدای آلم آرای، بر بندی پیر خود ببخشای، سعدی ره کعبه رضا گیر، ای مرد خدا ره خدا گیر، بدبخت کسی که سر بتابد در که دری دگر نیابد.